از بین بردن فاصله آن درد خواستن و اشتیاق سوزان برای دستیابی به آنچه نیازمندش هستید یکی از بزرگترین همراهان و همپیمانان شماست و نیرویی است که می توانید با مهار آن به هر آن می میخواهید دست پیدا کنید هنگامی که در فصل قبل نگاهی صادقانه به زندگیتان تان و خودتان را در هفت حوزه مختلف زندگی ارزیابی کردید در واقع تصویری را از وضعیت فعلی تان ترسیم کردید نقطه یه وضعیت فعلی شماست جایی که می توانید در آینده به آنجا برسید و چشمندازتان از چیزی که در زندگیتان امکان پذیر است نقطه ب است بین نقاط الف و به یک فاصله خواستن و یک کشش طبیعی وجود دارد درست مانند نگه داشتن یک آهن در نزدیکی یک قطعه آهنی خواستن دقیقا مانند آهن روبا مغناطیسی است شما به طور محسوس درک می‌کنید که رؤیاهایتان در حال کشیدن وضعیت فعلی شما هستند. این کشش ناراحت کننده و ناخوشایند است. به همین دلیل است که گاهی اوقات مردم هنگام شنیدن اینکه اوضا چگونه می‌تواند باشد، ناراحت می‌شوند. یکی از دلایلی که سخنرانی معروف دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور با عنوان من رؤیایی دارم، چنان تأثیر شگرفی در جهان گذاشت و چنان نقش عمیقی در حافظی فرهنگی ما حک کرد، این است که آن سخنرانی جهان اوت 1963 را بسیار ناراحت کرد. جان لنون تصورش از یک جهان بهتر و هماهنگتر را در شعر تصور کن به تصویر کشید و در کمتر از یک دهه به ضرب گلوله کشته شد. گاندی، حضرت مسیح، سقرات و غیره نیز همینطور. دنیای ما میتواند در قبال افرادی که درباره یک واقعیت بهتر صحبت میکنند سختگیر و خشن باشد. رؤیاها و رؤیاپردازها موجب ناراحتی مردم میشوند. البته اینها نمونه های منحصر به فردی هستند، اما همین اصل برای رؤیاها و اهداف شخصی افرادی که هرگز از آنها چیزی نشنیده نیز صادق است. همین اصل در مورد همه مردم از جمله من و شما نیز صادق است. فرض کنیم سالها قبل بین شما و یک دوست قدیمیتان دعوا و اختلافی رو اختلاف داده است. با خود میگوید ای کاش با آن شخص رابطه بهتری داشتید، بیشتر صحبت می‌کردید و تجربه های شخصی بیشتری را با او در میان می‌گذاشتید. بین جایی که امروز در آن هستید و جایی که در تصورتان می‌خواستید باشید، فاصله‌ای وجود دارد. آیا می‌توانید آن را احساس کنید؟ فرض کنیم شما شخص پرتلاش و زحمتکشی هستید و درآمد بسیار خوبی دارید اما هیچ گونه برنامه بازنشستگی قابل اطمینانی ندارید و نمیدانید وقتی که به هفتاد سالگی برسید چگونه می توانید زندگی راحت و آرامی داشته باشید شما میدانید که در هفتاد و دو سالگی دوست دارید زندگیتان چگونه باشد و همچنین نگرانید که اگر همه چیز به همان روشی ادامه یابد که در حال حاضر پیش می‌رود زندگیتان در 72 سالگی چگونه خواهد بود بین این دو مورد فاصله ای وجود دارد. آیا می توانید آن را احساس کنید؟ آیا هیچ گونه هدفی برای سلامتی یا تناسب اندام دارید؟ اهداف شغلی و حرفه ای چطور؟ اهدافی برای فرزندانتان چطور؟ رویای زندگی در جای دیگر یا انجام دادن کارهای دیگر چطور؟ هر یک از این تصورات ذهنی شما درباره اینکه اوضاع چگونه میتواند باشد، ولیکن در این لحظه آنگونه نیست، فاصله ای را با واقعیت فعلی شما به وجود میآورد. بیشتر مردم وقتی با مشکلات و مسائلی مواجه میشوند که بزرگتر یا متفاوت با چیزهایی است که تاکنون با آنها سرکار و کار فوراً احساس شکست می‌کنند و از تلاش کردن دست می‌کشند. بسیاری از مردم این گونند که مشکلات بزرگتر یا متفاوت را بد و منفی می‌بینند و زندگی را با منفیگرایی آلوده می کنند. چیزی که آنها درک نمی کنند این فلسفه است که اندازه مشکلات اندازه شخص را تعیین می کند. شما می با توجه به اندازه مشکلاتی که یک نفر را افسرده و غمگین می کند زندگی او را تخمین بزنید. همچنین می توانید با توجه به اندازه مشکلاتی که یک شخص حل می کند، میزان موثر بودن زندگی او را اندازه گیری کنید. هرچه چه بتوانید مشکلات بزرگتری را حل کنید، دستمزد بیشتری به شما پرداخت می شود، زیرا اندازه درآمد شما با اندازه مشکلاتی که حل می کنید تعین می شود. چیزی که بسیاری از مردم به آن میگویند گویند مشکل، در واقع یک فاصله و شکاف بین نقطه الف و نقطه بی است، و اگر ذهنتان را باز نگه دارید می توانید روی آن شکاف پل بزنید دلیل اینکه وقتم را صرف توضیح و توصیف این فاصله می کنم این است که بدانید این فاصله میتواند علیه شما یا به نفع شما عمل کند فاصله بین نقاط الف و به همیشگی نیست و باید رف شود و البته رف خواهد شد حالا یا به نفع شما یا علیه شما این قانون طبیعت است و شما نمی توانید جلوی آن را بگیرید اما انتخاب نحوه رفع این فاصله به عهده شماست. اولین راه برای رفع این کشش این است که نقطه اللف را به طور پیوسته به نقطه ب نزدیک و نزدیک تر کنید. اجازه دهید که آهن ربای تصوراتتان شما را به سوی خودش و به سوی آینده بکشد. آیا یادتان هست اشخاص ساکن منهنی شکست با چه چیزی کشیده میشدند با نیروی گذشته و چه چیزی افراد ساکن منهنی موفقیت را به سوی خود می کشید؟ نیروی آینده. اشخاصی که با رؤیاهای بزرگ واضح و مشخص زندگی می کنند، با چنان نیروی به سمت این رؤیاها کشیده می شوند که عملا غیر قابل توقف می شوند. چه چیزی افرادی مانند مارتین لوترکینگ جونیور، گاندی، مادر ترزا، ادیسون، توماس واتسون، ویلبرفورس یا لینکلن را به چنین اشخاص بزرگی تبدیل کرد که هیچ چیز جلودارشان نبود؟ هیچ سهر و جادویی در شخصیت آنها وجود نداشت، هرچند که در طول این مسیر قطعاً به شخصیتهای استثنایی تبدیل شدند. این قدرت رؤیاهای آنها بود، تصور و چشماندازی که هر یک از این مردان و زنان داشتند نیروی مغناطیسی را به وجود آورد که هیچ نیروی مخالف و متضادی نتوانست مانع آنها شود. اگرچه من از مثال‌های استثنایی از افراد مشهور استفاده می‌کنم، همین چیزها دقیقاً برای افراد معمولی نیز اتفاق می‌افتد. افرادی که من و شما هرگز چیزی درباره‌شان نشنیده‌ایم، اما رؤیاهایی دارند که به آنها اهمیت می‌دهند و آنها را زنده نگه می‌دارند. این همان نیروی است که می توانید در مسیر دستیابی به رؤیاهایتان از آن استفاده کنید. اما روش دیگر چطور؟ قبلا گفتم که این کشش به دو طریق برطرف می شود و روش دوم روشی است که علیه شما عمل می کند. اگر شما آن فاصله را با حرکت مداوم و پیوسته از وضعیت کنونیتان یعنی الف به سوی اهداف و رؤیاهایتان یعنی به از بین نبرید، پس با چه روش دیگری میتوانید آن کشش را برطرف کنید؟ اینکه دست از رویا پردازی بردارید و همه رؤیاها اهداف، آرمانها و جاه طلبی هایتان را رها کنید. به کم بسنده کنید و نقطه را حذف و ناپدید کنید. متاسفانه این انتخابیست که 95 درصدی که روی منحنی شکستند در نهایت اتخاذ می کنند. پی بردن به دلیل اینکه چرا بسیاری از مردم روش دوم را برمی خیلی سخت نیست. به هر حال وقتی که شما در نقطه علف هستید و از آن فاصله به نقطه بخیره می شوید خیلی آسان و طبیعی است که از فاصله موجود بین آنها بترسید. مردم حتی نمی خواهند پایشان را در مسیری بگذارند که گمان می کنند نمی توانند آن را به پایان برسانند. آنها با خودشان می گویند چرا تلاش کنم؟ حالا که آن کوه بسیار بلند و مرتفع است، اصلا چرا اولین گام را بردارم؟ من که هرگز موفق نمیشم. این گامی که سفر ترسناک به نظر می رسد، آسانی انجام ندادن آن می تواند بسیار جذابتر از آسانی انجام دادن آن باشد. اما به یاد داشته باشید که شما باید یکی از این دو مسیر را انتخاب کنید و نمی توانید ساکن بیستید. جهان خمیده است و همه چیز دائما در حال تغییر است. فقط دو امکان وجود دارد. یا آنجایی را که هستید رها کنید و به جایی بروید که می باشید یا به همان جایی که هستید بچسبید و جایی را که می باشید رها کنید. شما یا به سوی رؤیاهایتان می روید، یا از آنها دست می کشید. شما یا برای رسیدن به آنچه می باشید راهتان را ادامه می دهید، یا به آنچه هستید رضایت می دهید. راه دیگری وجود ندارد. به یاد داشته باشید که این برتری خفیف است و انجام ندادن هیچ کاری به معنی سقوط و پایین رفتن است. انتخاب با خودتان است. اکثریت فریبنده. دو برتری خفیف، منحنی موفقیت و منحنی شکست معمولاً مدت زمانی طولانی به موازات هم هستند. این دو مسیر ممکن است چنان نزدیک به هم باشند که برای بسیاری از مردم تشخیص تفاوت بین آنها تقریبا غیرممکن باشد. سپس ناگهان از یکدیگر جدا و دور میشوند. منحنی موفقیت مانند عقاب می میگیرد و منحنی شکست مانند سقوط شاخص بازار سهام به پایین افول میکند. افرادی که در اوج زندگی می کنند یعنی همانهایی که مسئولیت پذیرند زندگیشان در برخی موارد تا حدی ناراحت کننده و ناخوشایند است. افراد موفق کارهایی را انجام می دهند که افراد ناموفق تمایلی به انجام دادنشان ندارند و این موضوع اغلب به معنی زندگی کردن خارج از مرزهای منطقه راحتی و آسایش است. وقتی که در میان هر 20 نفر شما آن یک نفر موفق باشید، همیشه باید در جهت مخالف نوزده نفر دیگر حرکت کنید. اما افرادی که در جهت دیگر و با توده مردم همسو و همجهت هستند، زندگیشان اغلب در طی این دوره ابتدایی طولانی راحت است، اما بعدن بسیار سخت و ناخوشایند می شود. آنها ناگهان متوجه می شوند که پول کافی ندارند، سلامت یا شادمان نیستند، روابط خوب و غنی ندارند و زندگیشان به زندگی بسیار سخت و ناخوشایندی تبدیل شده است. در مقابل، آنهایی که ساکن منهنی موفقیت هستند، همانطور که زندگیشان پیش میرود به زندگی راحت همیشگی دست پیدا می کنند. زیرا با گذشت زمان اوضاع مالی خوب، سلامتی، شادی، روابط غنی و موفقیتشان ادامه پیدا می کند. در واقع آنها به چیزهای بیشتری دست پیدا می کنند این یعنی باید طرز فکرتان را درباره منطقه آسایش و راحتی تغییر دهید این نوعی تغییر در فلسفتان است یعنی پذیرش زندگی سخت و ناخوشایند به منظور دستیابی و رسیدن به زندگی کاملا راحت نه زندگی فریبندهی که در ظاهر راحت و خوشایند است آرتور شوپنهاور فیلسوف بزرگ آلمانی میگوید تمام حقایق از سه مرحله عبور می کنند. ابتدا مورد تمسخور قرار میگیرند سپس به شدت با آنها مخالفت می‌شود و بعد به مسابه امری بدیهی پذیرفته میشوند گاندی این موضوع را به این صورت بیان می کند. ابتدا شما را نادیده میگیرند سپس به شما میخندند پس از آن با شما میجنگند و سرانجام شما برنده میشوید هر دو عبارت یک بینش عمیق از ماهیت آن 95 درصد را نشان می دهند. اکثر افراد همیشه اجازه می دهند که مرحله اول و دوم بگذرد و منتظر می‌مانند تا حقیقت به مسابه امری بدیهی پذیرفته شود تا آن را به کار گیرند. کلید موفقیت شناسایی و تشخیص آن چیزهایی است که سرانجام بدیهی می شوند. البته پیش از آن که به مسابه امری بدیهی پذیرفته شوند. به زبان ساده‌تر ببینید که اکثریت مردم چه کاری انجام می‌دهند و شما عکس آن کار را انجام دهید. البته این کار ممکن است سخت و ناخوشایند باشد، حداقل در ابتدا. هنگامی که آن 95 درصد شما را نادیده می‌گیرند، به شما می‌خندند یا با شما می‌جنگند. اما در پایان، شما برنده می‌شوید. وقتی که با برتری خفیف همراه شوید همیشه برنده اید. البته در اینجا باید کمی هوش و بسیرت به خرج دهید. شما نمی توانید انتظار داشته باشید، فقط به این دلیل که در مسیر مخالف اکثریت حرکت می کنید، همه چیز به نفع شما تمام شود. مخالفت به منظور مخالف بودن با دیگران فقط نوع دیگری از همنوایی با آنهاست. شما هنوز هم برده اکثریت هستید، فقط در تضاد با آنها رفتار می کنید. احتمالش خیلی زیاد است که وقتی از منحنی موفقیت بالا میروید به تنهایی به بالای آن برسید. مانند ویلبرفورس، ادیسون یا لینکل. کاری را انجام دهید که اکثریت مردم جرأت و شهامت انجام دادنش را ندارند. این ریسک را بپذیرید که آن یک نفر باشید، نه یکی از آن 19 نفر. آیا مردم از شما انتقاد می‌کنند؟ البته که این کار را می‌کنند. اما آیا تا به حال دیده‌اید که مجسمه‌ای از یک منتقد ساخته شود؟ ما مجسمه ای آن 95 درصد را نمی‌سازیم، بلکه مجسمه ای آن 5 درصد را می‌سازیم. چیزی که از مراسم ترحیم یاد گرفتم. هنگامی که در شرکت تگزاس اینسترومنت مشغول به کار شدم، کاملا آماده پذیرفتن یک پست مدیریتی بودم. اما زندگی نقشه های دیگری برایم داشت. آنها من را در بخش فروش به کار گرفتند. مبهوت و وحشت زده شده بودم. مطمئن بودم که امکان ندارد ملاقاتهایی برای فروش ترتیب دهم و به طور مفتظهانه شکست نخورم. من از عدم پذیرش نمی ترسیدم. ترس من از صرفکنگی و تحقیر ناشی از عدم پذیرش بود. همان موقع میخواستم از شغلم استعفا بدهم و شرمسار و ناراحت تحصیلاتم را ادامه دهم. اما میدانستم افراد موفق کارهایی را انجام می دهند که افراد ناموفق تمایلی به انجام دادنشان ندارند در موقعیت بدی گیر افتاده بودم اما میدانستم که باید کارم را ادامه دهم برای برقراری اولین تماس فروش همه ی پرونده های مشتریان را به دقت مطالعه کردم و کوچکترین و بی اهمیتترین مشتری را انتخاب کردم یک داروخانه بسیار کوچک در شهر گینسویل ایالت کالیفرنیا. با خودم گفتم که اگر قرار است اشتباهی مرتکب شوم، بهتر است که کمترین آسیب و ضرر ممکن را داشته باشد. بعد از دو ساعت و نیم رانندگی به آن داروخانه رسیدم. رنگ صورتم از ترس سفید شده بود. اتومبیلم را پارک کردم و حدود نیم ساعت در آن نشستم. کولر اتومبیل را روی خنک ترین حالت گذاشتم و صورتم را جلوی دریچه کولر گرفتم. از شدت ترس خیس عرق شده بودم. در آن لحظه آسانترین کار ممکن نشستن داخل اتومبیل بود، گرچه فلسفه برتری خفیف هنوز در زندگیم مطرح نشده بود، میدانستم که این اشتباه کوچک و ساده اگر در طول زمان مرکب شود تمام رویاهایم را به قارت میبرد. وقتی که برای اولین تماس فروشم آماده می شدم از خداوند طلب کمک کردم و همانطور که می دانید, گاهی اوقات که چیزی را صادقانه و آجزانه از خدا طلب می کنید، ناگهان جوابی از راه می رسد. در این مورد، جواب مشکل من به شکل مقاله نمایان شد که چند روز قبل در یک مجله خوانده بودم. البته در کمال تعجب، آن مقاله درباره مراسم تشییع جنازه بود. در آن مقاله نوشته شده بود که در یک مراسم تشییع جنازه معمولی به طور متوسط تقریبا ده نفر گریه می کنند. باور این موضوع برایم سخت بود یک بار دیگر آن پاراگراف را خواندم تا مطمئن شوم که درست متوجه شدم ده نفر فقط همین منظور شما این است که من تمام عمرم را صرف سعی و تلاش تحمل سختی ها، کسب دستاوردها موفقیت‌ها غمها و شادی‌های می‌کنم که در پایان عمرم در کل جهان فقط ده نفر به من اهمیت دهند و در مراسم تشییع جنازه من گریه کنند به سراغ پاراگراف بعدی رفتم آن پاراگراف حتی بدتر هم بود. وقتی مراسم تشییع جنازه به پایان می رسد، تنها عاملی که تعین می کند چند نفر در مراسم خاکسپاری سپاری شرکت می کنند، آب و هواست. آب و هوا؟ بله. نویسنده مقاله گفته بود که اگر هوا بارانی باشد، پنجاه درصد از افرادی که در مراسم تشیع جنازه شرکت کردند، تصمیم می گیرند که در مراسم خاکسپاری سپاری شرکت نکنند و مستقیم به خانهشان برمیگردند. واقعا باورش سخت بود منظورتان این است که در پایان همه اتفاقات خوب و بد زندگیام وقتی جسد بیجان من درون تابوت قرار دارد و آماده خاکسپاری است و نزدیکترین و عزیزترین افراد زندگیم باید وجودم و زندگیم را به یاد بیاورند و از من قدردانی کنند نیمی از آن جماعت به دلیل بارش باران مراسم تشیجنازه من را نیمه کاره رها می‌کنند. وقتی که این مطلب را خواندم واقعا معیوس شدم اما آن موقع که بیرون آن داروخانه کوچک درون اتومبیلم نشسته بودم، فهمیدم که مطلبی رهایی بخش بود. با خودم گفتم چه اهمیتی دارد که دیگران درباره کاری که من انجام میدهم چه فکری میکنند؟ اگر احتمالش آنقدر کم است که در مراسم تشیه جنازه من گریه کنند و حتی اگر آسمان برای من گریه کند، پنجاه درصد از آنها مراسم خاک سپاری را ترک میکنند، بنابراین چرا باید نگران باشم که آنها درباره من چه فکری می کنند ؟ چرا باید از عدم پذیرش بترسم؟ چرا باید بسته شدن یک یا دو در برایم مهم باشد ؟ چرا باید دلواپس و نگران افکار دیگران باشم؟ چرا نگران چیزی باشم که آن 95 درصد می گویند فکر می کنند یا انجام می دهند؟ مواجهه و رویا رویی با حقائقی در مورد مرگ چه بسا برخی از حقایق مهم زندگی را برایمان روشنتر کند؟ آن مقاله منطقه آسایش مرا وسیعتر کرد و شهامت و شجاعتم را به یک سطح جدید برد. سرانجام شهامتم را جمع کردم. از اتومبیل پیاده شدم و به داخل داروخانه رفتم و به گونه ای صحبت کردم که معتقدم تا به امروز بدترین ارائه فروش در تاریخ بوده است. آنها چیزی نخریدند و به تعبیری آن ارائه یک شکست واقعی بود. اما وقتی که به اتومبیلم بازگشتم سربلند و راضی بودم. من کارم را انجام داده بودم و این برایم پیروزی بود چند روز بعد در حالی که در ترافیک بودم یک بار دیگر به صورت کاملا اتفاقی به یاد آن مقاله افتادم در همان حال از شیشه اتومبیلم به بیرون نگاه کردم و فهمیدم چرا همه اتومبیلها توقف کرده بودند دسته ای از تشیه کنندگان در حال عبور از خیابان بودند عبور آن دسته نیز کمتر از یک دقیقه طول کشید زیرا فقط شامل چند اتومبیل بود. هنگامی که ها کم کم و به آرامی شروع به حرکت کردند، فکرم به سوی شخصی رفت که درون ماشین نشکش دراز کشیده بود. آیا او تمام زندگیش را نگران و دلواپس این بود که دیگران دربارهش چه فکری می‌کنند؟ و ناگهان این فکر به ذهنم خطور کرد که دسته تشییکنندگان چه کسی طولانیتر است. در مراسم تشییع جنازه چه کسانی هزاران نفر گریه می‌کنند؟ برای چه کسانیست که میلیون ها نفر سوگواری می کنند و ماتم میگیرند، برای آنهایی که کارهای را انجام می دهند که دیگران تمایلی به انجام دادنشان ندارند هم آنهایی که برایشان مجسمه میسازیم، برای مارتین لوتر کینگ، گاندی، مادر ترزا و لینکول برای افرادی مراسم تشید جنازه بزرگی برگزار می شود و جمعیت بسیاری برایشان سوگواری می کنند که در تمام زندگیشان نگران این نبودند که دیگران دربارهشان چه فکری می کنند. افرادی که اثر موجی دارند. افرادی که در کارشان مهارت یافته و استاد شدند. داستان‌های شخصی از خوانندگان کتاب آرت جوناک، یوستون ایالت تگزاس مدتی پس از تولد دخترم با اون که تمایلی نداشتم مجبور شدم از برنامه غذایی دولت برای کمک به مادران و نوزادان استفاده کنم تا شیر مورد نیاز فرزندم و تهیه کنم. اون لحظه لحظه مهم و تعیین کننده تو زندگیم بود. حدودم 20 ساله بودم و زندگیم تو همه جنبه ها در سراشیبی سقوط بود. میدونستم که وضعیت فعلی زندگیم به دلیل تصمیمایی بود که طی پنج سال گذشته گرفته بودم. از اماق وجودم میدونستم که باید زندگیمو از یک زندگی مسئولیت گریز به یک زندگی مسئولیت پذیر تغییر بدم. یکی از تصمیمام خیلی حیاتی و مهم بود. هر روز در حالی که مشغول مراقبت از دخترم بودم شبکه تلویزیونی جالبی به نام شبکه مردم و تماشا میکردم. هر وقت که از مسیرم دور میشدم گوش کردن به صحبتهای حکیمانه افرادی که تو اون شبکه تجربیات و بینشاشونو با دیگران به اشتراک میذاشتند به من کمک میکرد تا به مسیر درست برگردم. همون موقع تو سمیناری شرکت کردم که تو اون جف اولسون درباره مفهوم برتری خفیف صحبت کرد. اون گفت که برتری خفیف به موفقیت اون تو زندگیش کمک کرده و بعدش هم گفت فکر میکنم برای شما هم به خوبی موثر باشه. اون این مطلب و با ما در میون گذاشت که چگونه همه پاداشهای ما در بیست درصد پایانی زمانی که برای انجام دادن کارامون سرمایه گذاری می می‌کنیم نمایان میشن. من نیاز به باور چیزی داشتم، بنابراین همون روز فلسفه برتری خفیف و باور کردم. هر تصمیمی که تو پنج سال بعدی زندگیم گرفتم، نوعی تصمیم برتری خفیف بود، با این تفاوت که به جای اشتباهات ساده در تصمیم گیریا به اقدامای منظم ساده و مثبتم کمک میکرد. از اون زمان بیشتر تصمیماتم منو به مسیر رشد و پیشرفت هدایت کردند. تلاش اون روزامو هیچ وقت فراموش نمی کنم. دور شدن از مسیر، برگشتن به مسیر، دور شدن از مسیر و بازم برگشتن به مسیر. با درک اینکه خودم پروژه هستم، کار بر روی خودمو شروع کردم. چیزایی رو که یاد گرفته بودم، خوندم و به کار بستم. توی جای مشغول کار شدم و تمام تلاشم به کار بستم من چشم انداز بلند مدت تعیین کردم و خوشنودی آنی رو به تأخیر انداختم میدونستم که واسه موفق شدن باید کارهایی را انجام بدم که بقیه تمایلی به انجام دادنشون ندارن اگه موفق میشدم به خاطر تلاش خودم بود اگرم شکست میخوردم بازم به دلیل رفتار خودم بود نمیتونستم دیگه یا سرزنش کنم و هیچ‌وقتم این کارو نکردم آسون بود ابدا آیا واقعا ارزششو داشت؟ البته که داشت. من پس از یه مدت تو امور مالی، روابط خانوادگی، سلامتی و تناسب اندام، اعتقادات، روابط دوستانه و همچنین شادی و استقلال شخصی به اون نقطه اوج برتری خفیف و 20 درصد جادویی رسیدم. من یه شاهد زنده از این حقیقت هستم که برتری خفیف موثر واقع میشه. از اون زمان تا حالا فلسفه برتری خفیف و به مخاطبایی در بیش از 20 کشور یاد دادم. من یه نمودار برتری خفیف برای خودم درست کردم که دخترم با استفاده از اون تو هنرهای رزمی به کمربند مشکی رسید و همینطور از اون برای ایجاد عادت مطالعه روزانه حداقل 15 صفحه از یک کتاب خوب در زمینه پیشرفت شخصی استفاده کرد. دخترم به تازگی وارد ده سالگی شده فلسفه برتری خفیف بخشی از زندگی و دینشه اون یه خواهر سه سالم داره و البته به لطف برتری خفیف این بار پول لازم برای تهیه شیرش دارم نکات مهم مهارت یافتن و استادی لحظه ای آغاز می شود که پا در مسیر میگذارید شکست لحظه‌ای شروع می‌شود که از مسیر خارج می‌شوید. خواستن ناراحت کننده و ناخوشایند است، اما برای برنده شدن ضروری است. برای از بین بردن فاصله بین جایی که هستید و جایی که می‌خواهید باشید، دو راه وجود دارد. یک. می توانید جایی را که هستید رها کنید و به سمت هدفتان کشیده شوید. دو، می توانید هدفتان را رها کنید، دکمه تأخیر را بزنید و در جایی که هستید باقی بمانید. وقتی که پا در مسیر مهارت یافتن و استادی می گذارید، به احتمال زیاد تنها خواهید بود.